اینا معصومین و زن صداری مصحب مجمعین اللهم افرقنا جمعی مشغلین محمد رحمتی که با سایی تخیر بحث صحبت آجیب تخصیص عموم کتاب به خبر واحد بود بحث تا اینجا رسید که این یک مسئله اولی گیر بنایی به اون تخصیص کتاب بسند که اون باید شدارانه بررسی بشه باز خود اون مسئله هم قید خواهد خوب تحریف بشه تحریف اون کتاب سنت باز یه دیگرانه دیگری داره به اون حقیلت سنت که اصلا سنت رسول الله چیه از کردیم سابقا دو معنا تحریف میشه کلی در این هر وجود داره می‌گی چون این رو به یک مناسبت به بحث دیگه مطرح شد اینجا واسه بحثش میشه طولانی هم هست واقعا طول می‌کشه یه معنایی که مشهور علمای اهل سنت قائلا و اون اینکه اصولاً سنت کلاً ولو ترس چه رسول الله صلی الله علیه وآلی وآلی و آله وسلم بیان شده لكن در واقع همون که اصلا کلاً در قرآن اومده یعنی اون سنن رسول الله هم در قرآن با که ما اون معنا رو درک نمی کنیم مثلا در قرآن ادله ارث که آمده که پسر اینقدر و دختر اینقدر به اون خصوصیات یا مادر یا پدر این که اگر اینها مثلا منبال مثال پدر یا مادر قاتل بود دیگه ارث نمی این جزو سننه پیران بر فهمده در قرآن زالجه که پدر برمانه پدر ارث نمی میخواد قاتل باشه میخواد قاتل باشه میخواد اهل کتاب باشه اهل کتاب نباشه این که لای طبارسان اهل ملتین لای طبارسان مسلمان عظم میبره اما اون اونم مسلمان عظم burnout یا قاتل عظم NEW این را جزء سنن میدونن اقتلاق خودشون. این هم این خط معتقیله که حتی این سنن هم در قرآن آمده ولی الان ما تو قرآن آیه ندارم که لایه رسول قاتل لکن از آیات قرآن پیغم بر اکرم این استظهار رو میکردند که ما نمی کنیم پس در سنت هم جهل الهیه فود دید. لکن فهم اون جهل از خصائص رسول الله در بیان رسول الله آمده مثلا ظاهر آیه مبارکی تجارتان انتراز همین که ترازی بود کافیه ظاهر آیه اما این که اگر کاربراری بود این معامله باثره ولی ترازی باشه یه چیزی دستش میگه میگه من می فروختم در هزار هم ممکنه 500 باشه ممکنه 50000 تام باشه خب این قراری سال ترازی زاده نداره. ترازی بلاگردن ظاهر تجارت ان تراز شال ندارن ترازی دارن تا اینکه پیامبر خاموش بی‌عقری باثره نه نه بیان به قرار یا انه قررا معروف سلس به ال قرر پیامبر قرار رو قطال پرمودن پس این بی با این که ترازی درش هست من ازالک به خاطر مسئله قرآن بقید این سنن که اصطلاحا سنن نبی میگن این ها رو میگن که من برای اکرام از قرآن گرفتن همون به اقرارید هم از قرآن گرفتن در زوار قرآن نیست یا اصلاح داره یا عموم داره ظاهر آیه مبارکه نیست لکن ما نمیفهمیم این یک تفصیل رو جرس که مشهور در اهل سنت در این معاصرین ما که بعضی‌ها دیدن کتابی نوشتن همین جور معنا کردن سنت رو هم ارجاع به جعل الهی کردن حالا با بیانات مختلف مثلا معتقدند که این هم یک نوع بیان از رسول الله بیانه بیان رحیانی یعنی اصلا نه نبی عنه اینقدر از لله نیست در این که مثلا آیه باشه نیست اما از طرف خداست و خداوند متعال متعار چیز کردن بیان کردن و وظیفه ای خیغمبر بیان قرانه بیان عموم یا اطلاح قرانه این هم یک نوع وحی میدونن یک نوع وحی کتابی برسته یک نوع وحی بیانی این هم یه اصطلاحی داره به عذابکاره در مقابل این تفکر تفکر است که نه سنت جعل خود رسول الله نه اینکه جعل علاجی باشه جعل علاقی تجارت انفرازه پیغمبر اکرم برای حالا اون نکار که شما سابقن شهر احلا بیجاش جمید چون <تصفح> سنن در افعالم هست در طروق هم هست یعنی در محرمات هم هست در واجبات هم هست سنن بر، اون بزا جعل رسول الله اصلا در واجبات روایاتی زیاد داریم که نماز دو بود این نماز مغرب یا عشاء و ظهر و عصر رو اضافه فرمودند این جلال رسول الله که این رو هم در نماز جمعه دیگه نکردن به خاطر به ای که در نماز جمعه بود چون نماز جمعه ای که پیامبر خوندن و نماز جمعه در سفر خوندن چون تا در مکه بودن که پیامبر ها جو نخوندن در مدینه وقتی که قریش نزدیکای مدینه قبا که منتظر شدن که رمون یاران ول حق باشند خود قباشون قبل نماز جمعه خود چون خودشون قبل از نماز خود نماز نما کلا درو بود در حجرات بیران بلاکره به مدینه کل نماز ها کتی بود اون وقت تا خودت اضافه کردن به این بزرگارتشون نماز صبحموند مثلا خب تاکید زیاد و ناخله شون ناخله سوفی تاکید دارو همین جا اضافه به نماز نشد مگر در یک واسه شهید داره که ظاهر رسول الله این کار رو خود رسول الله انجام داده بعد راز سیخ ول نیصان بعدا در ذیلش تو سنت سنتو عدیل فریزه این خیلی تعبیر زیبایی سنت هم دوش فریزه شد یعنی فریزه الهی که الزام آور رو تا روز قیامت سنت هم همینطور پس این تفسیر دوم که سنت جهله رسول الله البته این جعل رسول الله مبدهش الهیه یعنی این چونیش که پیغمبر اکرم رو بلانسفر مثلا خودشون جعل کرده باشه این از اده از روایات چین این استفاده میشه که نقطه جهلم اینست که خدامنده متعاد در شب مرحب تمام نیاز مندگان رو تا روز قیامت برای رخ نفس رسول الله روشن یعنی هم وحی الهی و رسول الله و عوشنش رو پرقی شد و هم ارائه جمعی مساله و مخاصد بشر خواه روز قیامت لذا به اون قسمت که صلاحیت وحش شد پیغمبر اکم فراحض الهی و قرآن رو برد کردن و به این قسمت دوم خودشون جهل سندر کردن یعنی به عبارت دیگر هم تشکیف موضوع داده شده از طرف خدا خدا برای پیزن بر تمام این روشن روشنگه و هم بعد از تدین موضوع این در رسولا تفریز شد فلوزه اله رسولا این تفریز شد که طبق اون مساله تا روز قیامت جهد رو و روزان به اسلا موارد سنن پیش آمون. این مستفاد از روایات ماست ما در روایات ما این وارد شده که سنن اینه و روشن شد طبق این دو تحصیلی که ما از سنت داریم سنت با کتاب باید طبیل بشه مثلا آمدن گفتن اگر سنت شاره کتاب باشه درست سنت باید تفسیر بزنه مشکل داره. از این ونفیه ریشه در اونجا داره سلام علیکم یا آمدن قبول کردن که سنت تفسیر میزنه اما نرس نمیکنه. کنه پس بس اصاسا و این نبود که خبر واحد آیا ناسخ کتاب یا نه اصل برمز اون روی شیف بحث اون حقیقت سنت بود بعد حقیقت سنت این بحث پیش آمد که آیا سنت صلاحیت تخصیص کتاب رو داره یا نداره برای خود اون که جل رسول الله سنت خبر واحد که سنت البته یه تساموهی هنوزم که هنوزه متاسفانه در وضعه های ما هست در وضعه شیعه تقریبا سنی ها خیلی تساموه رو ندارن ما بیشتر داریم سنت رو آنه حدیث میگیریم مطلقه هنوز حدیث بزن حدیثی که گناسیه پسیره کسی نرحب میکنه حدیث و سنت میگیریم این یک اصطلاح غیر علمی است الان متاسفانه در وضعه ما رائشه خیلی رائشه مثلا این مرموم آی امیلی کتاب الغدیر کتاب و سنت و تاریخونش از سنت در اونجا این سنت نیست که من میگه ما حدیثه الغدیر رو برطب احادیث نه سنت رو همه رسول الله به نه که <تصفيق> نه ما تا این تکلیر داری ما در مقام استظهار ما در مقام استظهار این با عنوان یک اصلاف فقیه اسلامی آیا در این شریعت مقدسه نسخ کتاب فقط با کتاب یا سنت هم می توانی نسخ کتاب برون خب همین دنبال این. اگر گفتیم یک ش... به طور کلی کتاب یک منزل ایسان یک نکاتی داره مثلا از اشکالاتی که سنیا مزرکی مثلا کتاب لغزش و بیانش هم اعجاز هست اجازه اعجاز هستن. و سنت این خفلت رو ندار مثلا اینجوری بحثای کلامی هم گوردن یا به اصطلاح امروزی بحثای امروزی کتاب به منزله قانون اصاسیه سنت به منظله قانون مدنیه قانون مدنی میتونه قانون اساسی رو نصف بکنه. اما میتونه تفسیر بزنه میتونه تخصیص بزنه اما تخصیص هم معنی تفسیر. این رو, این, برای دونه برای دونه. این رو دو را. این راه یعنی راه متعدد داره یک مجموعه شواهدی که در خود قرآن هست یا در خود سنت رسول الله هست در روایت هست یک دو وقوع خارجی که در خارج باشه یا نباشه این بحث از, از کندن یه بحث هایی ما در اصول داریم راجع به سنت نه معنی خبرواهد وعنی سنن به در معاصلین ما در بزنگان ما هم مرموم های توتبایی کتاب به نویشتونن نبید داره ترجام بده دستان نبیشون البته خیلی فنی نیست بخش های منغول ایشان حتی هباشی ایشان بر کفایی خیلی دعیق نیست خیلی, خیلی پختگی فقی و پختگی اصولی نده خب تویشون تو رشته خودشون داشتن در این رشته دیگه خیلی نبود اما مثلا شبیه این رو از کردم اگر آیان انا هم چون هست توی ایران حالا تو قمبقی مثل چنده هستم خطاب اسمال به اصطلا شاگر ابن, ابن قیم ابن قیم جوزیه این چون اسمش دایه اوقات آیون درست ابن قیم هم بهش میگن، ابن الجوزیه هم بهش میگن. ابن جوزیه خلاف عدد یعنی خلافه مصطلق ابن قایم الجوزیه اصل اسم صحیحش ابن قایم الجوزیه است. ابن قایم اختصاراً میه این شخص پدرش متولی مدرسه بود در شام به نام جوزیه اسم مدرسه‌شون زمان درغریی گرفته یک مدرسه‌ای در شام بود به نام جوزیه متولی مدرسه بود ایشون یعنی ابن قایم الجوزیه درست اسم زشت صحیحش رو شدیداً باعث میشه اینقدر خطا پس بکنن قاضی ابن القییم میگه نزد مولای تصافح نسبتش با ابن قیمی نسبت به نسبت صاف حقوق مثلا آوا با چی با فنر با نحبیه شاگرد ابن قیمی است اما اون تصصنین ابن قیمی را داره نزد مولای کتابش خیلی لطیفه تصافح نزد طریق و نظری کتابای مفیدی داره یکی زادالمآد الهاتی خیالات ایغا این کتاب رو بنا سنن رسول الله و حدی رسول الله سنن قولیه سنن فعیلی سنن فعیلیه در مقام شرح که میخواد اثبات بکنه به روایات و بحرسی رجالی و خودش هم صاحب نظره در حد یک صاحب نظر در مواهد حدیثیناتی و رجالیه اگر شبیه این در روایات ما نوشته بشه خیلی خوبه اون فقط سنن و سیره فعلی رسول الله رو جمع ولی کرده ما اهمه علیه مستقر و این بوده مرگون فیضا کاشانی کتاب احیال قلوم و غزالی شبیه منوسته با تحقیقه که بردن احیال قلوم احیال احیال چی احیال. احیال احیال محجس الویزار محجس الویزار شبیه تعلیقی بر کتاب این تعلیق به این معنی بر کتاب غزالی احیال قلوم و خیلی جون قاله ابو حامد داره کتاب رو دیده باشی میتونه قشنگه اصلا شارژ چاپ شده هم یک نسخه ای چاپ شده که خط پتر ایشون مرحوم علامه خدا خوشخط بوده همون نسخه رو چاپ کرده حالا اون های می شارژ به نسخه اون نسخه سه‌چاپ شده و جداگانه هم چاپ کردن یعنی انصافاً کتاب خوبی است کتابه خب یک جای حرف ابو حامد ابو حامد مارش اون غزالیه در کتابی از علوم احیاء العلوم در میان احل سنت حالا اون مخالطینش دوی خودشون مخالطینش خیلی باش بزن احیاء الکفر احیاء اخيال احیاء نه اخيال چيه اسمی که زاب احیاء علوم دین؟, دین اونو احیاء علوم اما به هر حال باقی نظرت مخالطینش اصافاً در میانعالم آلم احل هنوز یک کتاب سرشناسی حساب میشه که به این حیث نظیر خودش نداره. محرجن کتاب خوبی کسی هم بعد از شیخ من نشینند که باز احیاء علوم تنبیه باشه. اما این زادالمعاد اگر به اصطلاح یک شبیهش نوشته بشه کار خوبیه. سنن فعلی این و سلام جمع بشه و تنقیح بشه. ایشون سعی کرده از احوال سنن یعنی از خوابیدن و بیدار شدن تو بیدار میشن لباس از چی بود، تخت از بود، روشک تمام رو یکی یکی انقایم چند می‌کنه از رو عمرونو مسافت از شروع داراستنشون از رجین جوو شروع تا رجین جوو تمام رو یکی یکی نوافل شیر می‌خوندن چند از نوافل می‌خوندن شب می‌خوندن روز می‌خوندن تمام رو یکی یکی این شرح در این کتابش جنگ کرده کتاب شیر میان مدتها در نجف هم بودم باش معنوس بودن شبیه این در شیعه نوشته به تاج بهله بیگ میگه از بهار و غیر بهار انسان روایات سلوک عملی اهل بیت اصنعی اونامش یک دستمال داشت خاطر خصوصیات دستین چیزایی که جنبه های یا لباس ارزاد اینج بود یا آثار ارزاد اینج بودی یا تازیانه ارزاد یا نقش خاطر ارزاد این جهت عملی رو و ایشان اضافه برقو تحقیق سندی هم کرده ان اونا درداشه بحث اشرافی خوبی داره حساب کتاب در حد خودش در عالم سنت لابد خوبیه لادالم و اخیرا شاهم این فرستایی که نگاه میکنم شاخهای بسیار زیاد شده خیلی روش اعتماد کردن من اون شاپ ها تدیم بودارم های خوبی الان شده که فماکان از بعد خارج نشه پس یک دهت به سنت در اصطلاح علمیش نه سنتی که ما الان داریم بگیم ما الان در حوزه های ما این تصامح هست من خیلی اصرار می‌کنم که اگر ما میخواییم در نوشته های خودم داخل در دنیای اسلام بشیم این تصامح رو باید برداریم این نوع هست که سنت تغییر این درسته. خبر واحد سنت نیست، خبر واحد حاکی سنته از راسته اول کفاره این که اگه مراد به سنت خود فید رسول قول باشیم اینطور اگه مراد حاکی باشیم در تختی موضوع در تختی در در موضوع اونجا این بحث در موضوعی الموضوع این بحش رو داره حالا این که به ما این تصامن اینشالله از روزه های ما برداشته بشه سنت همچی که ایشون فید رو فید به تغییر معصوم سلام الله علیه. حالا اون راه های رسیدن به سنت چیه؟ اون بحث دیگر ایست اون رفید از آمن از کردم ما تو مبارس و اصولیمون یک مبارسی رو خود مسادر تشریقی داریم یک مبارسی رو طرق اثبات داریم اینا با هم قلب نشه داریم. این بحث دو جهد داره یک بحث رو خود مسادر تشریقی مثلا نسبت اجماع با سنت چیه؟ نسبت اجماع با کتاب چیه؟ اجماعی که سنی آ نسبت سنت رسول الله با کتاب چیه نسبت سنت با این. یه ای بحث اینجوری داره یه بحث هم سنت و راه های که ما به سنت داریم اون بحث دیگه یه گذر راه های حسول غیر از اونه مثلا الان اهل سنت دارن که پیغنبر به ما مثلا گفت زنها زیارت خبور نکنه نه رسول الله انسا انتظور از الان خود اهل سنت اختلاف درن تو این مساله وهابی ها یا همبلی ها معتقدن که زیارت نمین، که تو بقیع راه نمیدن نه به خاطر بقیع، دلیل قبرستان راه نمینند. آن شیعه ها هم زنار خاصی بقیع راه میدن. در کل حجاب هیچ قبرستانی زن رو راه نمیدن چون یه روایت دارن که پیغمبر فرمود زن ها زیارت قبور ننه. از اون دارن از یکی از نساء موم... امهات المؤمنین ام سلمه است که کل نظور رسول الله یعنی یک قول باید فعل باهمیه این بحث رو اهل سنت دارم ماها نداریم شما هم چون قصول نخوندیم چون الان در احل سنت یاد اصحابی یا صحابیه که کن ننف علا کبه علی اهل رسول آیا آه این خودش تقریر هست یا نهنی اصلا چون مرادش نهست اینه کن ننف علا داله تاره هم صحابی کن تو اصلا داله صحابی من این کارو رو میگن اگر صحابی گفت خیلی تقریر حساب نمیشه اما اگه کلا نفع اون محسن اون مولوی مومنی این یه نوع تقریر حساب میشه درسته پس بنابراین این من فکر کنم به حدی بحثارو پس یه بحثی اینجا الان ما تو این بحث الان ما این بحث وارد نشدیم الان اونی که آخویی و دیگران نوشتن بحث خبر واحد یا حاکی سنت حاکی سنت میتواند تخصیص عموم کتاب بزن یا خب طبعا این بحث مفروغ انهه بعد از این که بگیم سنت صلاحیت تخصیص داره اما مثلا سنت صلاحیت نصف کتاب رو نداره اگر سنت صلاحیت نصف کتاب رو نداره تو خبروارد رو کرده بگوگلا نمیشه اگر سنت صلاحیت نصف داشت اون وقت این بحثیش نیاد که آیا خبروارد ناصف هست یا نیست چرا؟ چون نکته بحثشون دو سه جهازه که الان توضیح میدن پس یک نحوه اصل برون تو این بحث یه دو تا از اصل موضوعی باید بگیریم یکی اینکه اصلا تفسیر ما از سنت چیه چون اگر ما گفتیم سنت همون آیه قرآن همون حکم الادیسی در قرآن پیغمبر گفت خب این خیلی واضحه که تخصیص میزنه چون سنت هم از کتاب فاهم ما میکنه اما اگر سنت رو ما به انقلاب قانون مدنی گرفتیم در مقابل کتاب که قانون اساسی گرفتیم آیا قانون مدنی مثلا میتونه مثلا مجلس شورا میشونه کاری بکنه یا مثلا در نظام جمهوری که یک است رو به رهبری ولایت فقیه دادن آیا میتونه یک مطلب رو تایید بکنه تصدیق بکنه که در قانون اساسی نیامده یا تصدیق بزنه قانون اساسی این شبیه بحثه امروزون اینجوری میشه پس یک و بحث حقیقت سنته یک بحث راجع به سنت برای کتابه این دو تا بحث رو الان در اینجا وارد نشدیم نه اینکه در اینجا وارد نشدیم متاسفانه اصولا تو اصول شیعه این بحث نشده من چند در بحث کردم متاسفانه اصولی که ما داریم پس اون محاضرات یا کفایی یا خواهد اصول اصولا مباحث مسابر تشریف رو مستقلن وارد نشده و بحثی که مربوط است از مصادر معروف تشریع حالا بین اهل سنت معروف چهار از کتاب سو است و قیاس است و و بجای قیاس ما عقلی میگه قیاس است و اجماع, اجماع. چیزی میگم که اضافه کردن و نسبت هایی که اینها دارند و آثاری که اینها دارن این بخش از اصول ما تدریجا حذف شده ما مثلا به مناسبت حجیت زن و امارات معتبر و معتبر متعرض اجماع شدیم اجماع هم پیش ما جوز مسادر تشریع نیست اشتباه نشد پیش ما جوز امارات قرار داده شده یعنی از اجماع علماء قول امام معصوم کشت میکنند اما در رحل سندن اجماع جزء مسادر تشریع ها این اشتباه نشد مثلا اون اتحاد دارن که اگر فرض بنی شد که امروز علماء ای اسلام فرض کنید و ان اکتفا پیدا کردن به خاطر مشکلی که پیش اومده عذریه و قربانی را از حج بردارن یا مثلا عذریه و قربانی را که در شهر خودش مثلا که در منا و توچین باشه شما حالا اکتفا نظر کنه مثلا بردارن چه ضرورت مخرج میشه، و اثاث میشه اصلا قربانی را از حج بردارن اونا معترضن که این تکلیف میذارن که صادو و شال اجماع حجت اجماع خودش این است حجت اونا اجماع رو کاشخ نمیذارن جزء مصادر تشریع میذارن بعضها در خرق اسلامی از وقت اونا اجماع گفتن عدهشون پیدا شدن اجماع رو کاشف کنستن مثلا ظاهری ها اونا مثل ما هستند. اجماع رو با جد اما خصوص اجماع صحابه یک یعنی کاشف از سنت شیعه قایف که اجماع فقهای های شیعه کاشف از قول ما معصومه که قول ما معصوم هجه سنت دقیقا و الا اصلا بحث اونها اصلا ما دو تا بحث داریم اشتباه نشه اونها یه بحث اصلا برای اشتباه ما چیز دیگه ای باریم اصلا کلن از هم جدا شدیم بایه اوقات ممکن اینها روشن نشه ما کلن در اصول ما این مشکل رو داریم مباحثی که بر میگرده به مسادر تشریف نداریم متفرقات آمده اصلا به مناسیب حجیت قرد حکمی خب که البقت حکم عقلی که از اول وقت اخیرا ادعای این اخر چیه مراد از و اصول چیه در احکام چیه جزء ادله اربعهه شما مثلا اینجوری اما اینکه مثلا به مستقلا یا از احکام عقلی رو مستقلا جزء ادله اربعه و جزء مصادر تشریع حساب بکنن مثلا از بحث باشه بحث اول حقیقت سنت بحث دوم نسبت سنت با کتا این دو تا بحث بحث سوم نسبت خبر واحد که حجت که حاکی از سنت ها با, با عموم کتابی این رو الان اینجا آوردهند و طبعا این بحث هم معنی برای اینکه خبر واحد حجیت تعبودی داشته باشه اگر حجیت تعبودی قائل نشیم که اصلا بحث معنی نداره اگه قالب حجت تعبدی نشدین یعنی ما باید طرق و رو پی کنیم. تا برسیم به که این سنت رسول الله، اگه سنت رسول باشه خب فقهی تاویده میشه. یعنی بدیل این مساله سوال اگر گفتیم خبر واجب حجت تعبدی نیست پس چجوری مساله ما طرح اینجوری مطرح ما باید به شواهد برگردیم، شواهد اوغلایی به اصطلاح ما شواهد قابل قبول در دانش‌های علمی در سطح استاندار به علمی باید این شواهد برگیردیم اگر ثابت شد این سنت رسول الله تخصیل کتاب میشه روی الله این کسانی که قائل بحجید خبر نیستن فراتون بندن یکی از اینا اما اون کسانی که قائل بحجید خبر هستن اونایی که قائل بحجید خبره، هستن اونا بحثشون این که ما تعبد قبول هستن تعبد این سؤال پیش میاد آیا تعبده به یک حجت مصادره است به اینکه او سنت بشه؟ همشون که سنت تخصیص میزنه این حجت هم تخصیص بزنه. اشکالی که تا حالا اینجا پس دهم اول روشن شد دوم و سوم و بحث اخیرش آیا یا حجت هم تخصیص میزنه، تغییر میزنه، سنت تخصیص میزنه. اشکالی که اینها مطرح کردن تا حالا بیشتر اینه که کتاب جزوه به اساس شریعت از یا به قول اونها قطعی است یا به تغییر بنده قانون اساسی این اساس شریعت با خبر حجه نمیشه شود درستش کرد اصل اشکالی که مطرح شده اینه البته احتمال داره که ما اینجا هم تفقیق قائل بشیم یک بگیم که اولا این بحث مبنیست بر این که تفسیر ما از حجه چیه مثلا با مثال اگر کسی گفت حجه خبر واحد یعنی مراد جعل مماسله جعل حکم یعنی معده خبر میشه حکم الله در حق در خب این مبنه رو کسی قبول کرد تفسیر خیلی واضحه بگه حالا فرسان سلط هم حکم الله این هم حکم الله در حکم داره سنت نگه نگه‌تخصیص نمی‌دن شنو حکم الله خب حکم الله چه فرمی‌کنن؟ که ظاهر ایده از علمای اهل سنت همینه که جعل حکمه مفاد سنت جعل حکمه یعنی شارع مقدس به ما دستور داده شما با مفاد با معدای خبر معامله حکم واقعی بکنید اگر مراد از سنت خبر وارد اینه خب این خیلی واجنه تخصیص اما اگر مسئله تاریخیت صرف باشه اونجا ممکنه شبه بکنه حالا ها بگم طریقیت بالمه ازاره شبه هم نکفرمه ممکنه اونجا شبه بیاد. پس بحث اولی بحث دوم پس یک بحث آیا کتاب آیا واحد، قجت هست یا نه بحث دوم آیا به اصلا تحلیل ما از قجت خبرواهد چیست؟ که بگیم این تأثیر داره؟ بخش ثبوت همون بخش نقطه اساسی ما اگر حجیت تعبودی رو قبول کردیم قبول حجیت به معنای این که ترتیب جمعی آثار داده بشه یکم هم همه آثار رو بار کنیم یکی هم آیا معنای حجیت این هست یا نه لازم چرا اشکال چیه تا حالا اشکالی که من دیدم در کلمات علما همینه کتاب قطعی است، این زنیه مثلا. درست است. یعنی کتاب واقعی است، به این حجت، حجت میشه یک امر واجبی رو تثبیت بزن یا بگیم کتاب قانون اساسی است، به این. یا بگیم کتاب اساس شریعته یا بگیم کتاب وحی الله این به قول انسان زراره آن فلان آن فلان نعر از این عظیم حدیث از این اسمو پابدیه میشه، چون جو یه توضیحات تو یه مرجعش این، لکن اضافه برای اینه که در کلمات اهل سنت آمده من یه مطلب دقیقی رو می‌خوام امروز ارجو کنم که من ننوشتم شیعه آیا ممکن است بگیم ما قبول داریم حجیت رو لکن حجیت رو حتی اگر خب مثلا لای رسول خاطر کار میان تخصیص کتاب می‌زنن در حالی لایر لای رسول خاطری که تخصیص کتابه ما حجیتشون قبول داریم. خب دقیقا همین ظرافت بحث اصولی. البته نیدم آقای کسی متعرض شده باشه. حالا تو ارتکاز و اصولین قدیم بودا که اون واقعا ارزش تأمل می کرد در کلماتشون یه حالت ارتکازی رو در ماغراء الفاظ احساس می‌کنیم که ما اصطلاحاً امروز میش میگیم ضمیر ناواگاه در روانشناسی در آن بقول آقای میگن که راه ذریای کوهیه می‌بینه یه قسمتش حالا نه قسمتش زیر ذیره. زیر آده. حالا این به ثریا کلی شما اینو بدونید اون عالم واقعی حتی شما مثلا علامه هلی یا شرایط شما بگات مثلا ببین آقا مثلا محقق حس و افکار فقهای شیعه ساده میاد اونی که در کتاب نوشته شده غالباً ده درصد شخصیت علمیه درصدش اون اکتشافی و بیرونیه که انسان باید تو اونها خیلی ظرافت‌ها و لطافت‌ها در اونجاست انسان وقتی تو کلمات و اصولی خیلی میکنه. احتمال می‌ده اون نقطه زرافت اون 90 درصده نگفته چیز دیگری بوده و اون نکته این حالا من این بحث تحق بکنم که جنبه و حصولی داره میتونیم ما قائل بشیم حجت هست اما تخصیص نمیدنه شاید نظرشون بگیم بود مثلا رسول قاتل حجت هست ما میگیم قاتل از نمیدن اما تخصیص کتاب نمیزنه یعنی حوائل تخصیص روش نگاه آثار تخصیص روش نگاه خیلی به میگم توی اعوایت من این من توی هیچ کتابی ندر شیعه ندر سنی یک احتمال میدم در ارتکاز فیخیشون اصولیشون این بوده اما خیلی ابراز سختانستم بکنم مشکل ابرازی باشه آلا آها خمام این سآله خب خیلی ابراز باید باعت... ولذا آرکویی میگه اگه حجت و میزنه این اصرار آرکویی مثل شما خب میگه اگه عمل کردین تخصیم تخزن... ها نکتش اینه ما بیاییم خود تخصیم یک زرافت های خاص خودش داره مثلا نکته تخصیم چیه؟ نکته تخصیم این است که موجب تنوان آن به زده خاص میشه ولذا عنوان درسته بیاییم اگر قبول کردیم حجیت جیهیت این تنگول نمیاره خیلی نخطه دریجیه ما به لایرسل قاتل عمل میکنیم با عنوان خود جل گفتم آقایم تو نیست نیستیم اگه واقعا مرادشون این بوده یعنی ارتکازشون این بوده این یک ذرافتیست انصافا یک ذرافت اصولیه و کجا نتیجه دارد میشه در شواذه مساحه مخصص چون در شواذه مساحه مخصص ای از این شغله معروفی کرده اثرید ادمای ما حتی از متقین صاب اوربه گفته به آن برمیگردیم آره بنا شده که به آن بر نمیگردیم مسئله گفت به عقل العلماء لا شککم فصائل العلماء زید عالم هست البته عملی از صادش نمی فاصله هست و نه مشکوک الفکر آره گفتید که به عقل العلماء برمیگردون میگن عالم عالم میه فلسش هم ثابت نشده میگن نه عقل عمل بعد از تحقیق میشه عقل عمل علما خیر الف صاد او دقت بکنید یعنی عام متعامل میشه به ذ به خاص به نقیض خاص این عالمش عالمه اما عالم غیر خاطرش احراز عالم غیر خاطر ببین بگیم شاید نظر اونها این بوده خوب دقت رو حکم خاص ثابت میشه لطیف این نکته خیلی ذریب اگر واقعا مراد جدی شد میگم من با تأملاتی که به اصلاح در اون نکته نگفته ها و ارتکازات و شاید نکته این بوده که متاسفانه تا اونجایی که من دیدم هیچ شفت متعرضی این نکته نشده بیاییم بگیم خاص حجت هست روایت حجت هست عملا بشینه کنیم اما مخصص عموم کتابی نیست اما اگر احراز کردیم مثلا رسول و سلاشی بیفرمون سنت مخصصه پس حرق بین سنت و حجت اینه سنت مخصصه عموم کتابی سه آثار تخصیص برش بارو میشید دقیقا ولی سنت بگیم خود سنته کار به قدیقی خود سنتشون سنت پیغمبر شد اما خبرگاهه روشن شد خیلی زرافت داره حجت هست اما مخصص نیست و این نقش اینه که ما در باب تخصیص یک آثار خاصی و عنوان مخصص بار بکنیم آه خوی بخال بکنیم نه حجت هست و اگه حجت هست مخصص فاشون نوکتی چای خوی اشاره دارن من احتمال دارم آخوندان به همون ارچو آخوند واقعا خب اصولی بزرگی نهیه چونه من و بزرگ ایشان نگشن استاد ماص معروفه خودمن متصدی ایشان خیلی هم خوش استزاد بودن خیلی هم خوش حافظه بودن نمیشه برای سن امضا رفت خیلی سریع و انتقال من قدس الله حسب شریف و خیلی خوش استعداد و خیلی هم خوش حافظه قدس الله سره من احساس من هرکم نلگشتن احساس من اینه که شاید اینها تو ارتکابشون این بوده که خبر راهیست چون حجت فرقی بگذاریم بین حجت و سنت سنت هم یجب العمل و بها هم مخصص کتاب میشه یعنی میشه آثار تکسوس برش بار میشه اما حجت یجب العمل و بها حجت یجب العمل بها میگیم دایر سلقاته اما مخصص نمیشه ولذا اگر یک کسی مشتبهه که ایشون آیا قاتل هست یا نه؟ یه کسی شبهه مصداقیه مخصص بگیم بنابراین اگر قاتل بود لایرست اما حالا که مشتبهه به عموم کتاب برمیگردی؟ خوب روشن شد اگر گفتیم مخصصه میشه شبههات مصداقیه مخصص باز به عموم کتاب بر برمیگردی؟ ظرافت به نصدین روشن اگر روشنش تکار رو کنه که اگر شبهه مصداقیه مخصص شد یعنی شبهه مصداقیه که این قاتل هست یا نه ظرافت روشن شد اگر بگیم حجته یعنی تا که میدانیم قاتل لایره پدرش که پدرش گفت یکی گفت که گفتا قاتلیه که خلاف خیزو خب این شبهه مصداقیه قاتل بودنه برای ما گلیم به عموم کتاب لعبه به من کلمه منعومت صدوست و این به اما اگه گفتیم نه مخصصه که ظاهرا مثلا خوبی هم همین کاره میکنن در شبهات مثلا خیلیه یعنی میگن به عموما هم بر نمیگردیم پس این معلوم شد بحث نقطه فقیه هم پیدا کرد زرافت پیدا کرد و اون تفکی که بین حجت و بین مخصص بودن که این وقت متأسفانه آیون متعرض نشدن این رو میشه قائل شده انصافه. یعنی انصافا البته ما که از اول به حجیت نیست ما که فی از من هذا البحث با قطع نظر از این مبنا اون کسی که, که قائل به حجیت ممکن است در اثر غیر که بحث مثلاً که قطعی و زنی و فلان و این کتاب الله و این کلام الهی است از این حرفا این صحبت اینجوری مطرح شده یا قانون اساسی و غیر قامل اساسی و که میشه که را از این راه هم وارد شد که بگیم حجت هست خاص حجت هست اما مخصص کتاب نیست یعنی اون آسال رو که ما در تخصیص میگانیم توی خبر نمیاریم اگر سنت واقعی بود میاریم اما توی خبر نمیاریم رسال الله